دو، عشق پدر و مادر و فرزند کودک از برکت وجود سرنوشتی مهربان و پرعطوفت استراب جدایی از مادر و زندگی جنینی را درک نمی کند به هنگام تولد ترس از مرگ را احساس خواهد کرد کودک حتی پس از تولد فرق چندانی با قبل از تولد ندارد او از درک اشیا ناتوان است و از وجود خیش و دنیای خارج آگاه نیست. تحریک واقعی گرما و قضا را احساس می کند ولی هنوز آنها را از سر اشان که مادر است باز نمیشناسد. گرما همان مادر است. قضا همان مادر است. مادر همان حالت نشعه حاصل از خورسندی و ایمه نیست. به اصطلاح فروید این یکی از حالات حاصل از خودفریفتگی است. واقعیت خارجی، اشخاص و اشیاء فقط وقتی مفهوم پیدا می‌کنند که برای حالت درونی بدن رضا یا نارضایتی به وجود آورند. آنچه در درون است واقعیت است. آنچه در خارج است فقط در چارچوب نیازهای من واقعیت می‌یابد، نه در چارچوب صفات یا نیازهای وجودی خودشان. وقتی که کودک رشد می کند و پرورش میابد، کم کم قدرت آن را پیدا می کند که را آنطور که هستند درک کند. لذتی که شیر پستان به او می دهد، با لذتی که از غذا خوردن احساس می کند، فرق پیدا می کند و مادر از سینه متمایز می شود. بعدها کودک تشنگی خود شیر لذت بخش، سینه و مادر را به عنوان هستیهای متفاوت و متمایز از یکدیگر درک می کند کودک می آموزد تا اشیای بسیار دیگری را به عنوان هستیهای متفاوت که هر یک وجود مستقلی برای خود دارند درک کند در همین زمان می آموزد که چگونه از آنها استفاده کند و چه رفتاری به آنها داشته باشد مثلا یاد می گیرد که آتش سوزان و دردآور است تن مادر گرم و لذت بخش است چوب سخت و سنگین است کاغذ سبک و پاره شدنی است او میآموزد با آدمها چگونه رفتار کند پی می برد وقتی غذا میخورد مادر به او لبخند می زند. وقتی گریه کند مادر او را در آغوش می کشد. یا هنگامی که میگوید دست به آب دارم او را تحسین میکند. مجموعه این تجربیات در این تجربه واحد متبلور و متشکل می شود. مرا دوست دارند. مرا دوست دارند چون بچه مادرم هستم. دوستم دارند برای اینکه ناتوانم دوستم دارند برای اینکه قشنگ و قابل تحسینم. دوستم دارند چون که مادرم به من نیاز دارد. به طور کلی، به خاطر آنچه هستم دوستم دارند. یا اگر دقیقتر بگوییم دوستم دارند برای اینکه وجود دارم. این احساس محبوب مادر بودن، احساسی انفعالی است. کودک برای محبوب واقع شدن نیاز به هیچ کوششی ندارد. عشق مادر بدون قید و شرط هست تمام آنچه باید انجام دهد، این است که کودک مادرش باشد. عشق مادری موهبت است، آرامشبخش است، احتیاجی به کس به آن نیست، نیازی به شایستگی و استحقاق ندارد. اما کیفیت بیقید و شرط عشق مادر یک جنبه منفی هم دارد. این عشق نه فقط احتیاجی به شایستگی و لیاقت ندارد. بلکه در عین حال نمی آن را کسب، ایجاد یا کنترل نمود اگر وجود داشته باشد است و اگر وجود نداشته باشد گویی زیبایی از جهان رخت بربسته است و از عهده من نیز کاری برای آفریدن آن بر نمی آید مسئله اکثریت کودکان قبل از سنین هشت و نیم تا ده سالگی تقریبا منحصر به این است که دوستشان بدارند دوستشان بدارند برای آنچه که هستند. کودک خود تا این سن هنوز عشق نمیورزد بلکه در مقابل عشق و مهر دیگران نسبت به خیش با سپاسگزاری و خوشحالی پاسخ میدهد. در این مرحله از رشد کودک عامل جدیدی پا به صحنه میگذارد و آن احساس جدیدی است که میخواهد با فعالیت خود عشق بیافریند برای نخستین بار کودک به فکر میافتد چیزی به مادر یا پدر بدهد چیزی به وجود بیاورد یک قطعه شعر، یک نقاشی یا هر چیز دیگری برای اولین بار در زندگی کودک مفهوم عشق از محبوب بودن به دوست داشتن یعنی به خلق عشق تبدیل می شود. از این مرحله ابتدایی تا بلوغ عشق سالهای بسیاری طول می کشد. بعدها کودک که احتمالاً حالا به نوجوانی رسیده است، بر نفس پرستی خیش فائق میآید. افراد دیگر برای کودک فقط وسیلهی برای ارزای نیازهای شخصی او نیستند. نیازهای طرف مقابل نیز به اندازه نیازهای خود او اهمیت می آبد. در حقیقت آنها مهمتر میشوند ایثار ایسار کننده تر و شادی بخشتر از دریافت کردن می شود. و عشق ورزیدن حتی اهمیتی بیشتر از محبوب بودن کسب می کند او در این مرحله با عشق ورزیدن زندان تنهایی و انزوای خود را که عبارت بود از حالت خودفریفتگی و خودبینی رها میکند. او احساس نوعی پیوند جدید، نوعی سهین بودن و یگانگی میکند. مهمتر از این، به جای این که در نتیجه محبوب بودن که محصول کوچکی، ناتوانی، ناخوشی یا بچه خوب بودن اوست، فقط به دریافت کردن متکی باشد به توانایی ایجاد عشق از طریق عشق ورزیدن پی می برد. عشق کودکانه از این اصل پیروی می کند. من دوست دارم چون دوستم دارند. عشق پخته و بالغ از این اصل پیروی می کند. مرا دوست دارند چون دوست دارم عشق نابالق و ناپخته میگوید من دوستت دارم چون به تو نیاز دارم عشق رشد یافته میگوید من به تو نیاز دارم چون دوستت دارم رشد استعداد عشق ارتباط نزدیکی با موضوع عشق دارد کودک در ماهها و سالهای اول زندگیش بیشتر از هر موقع دیگری به مادر وابسته است این وابستگی قبل از تولد یعنی هنگامی که مادر و طفل با وجود دوتا بودن هنوز یکی هستند شروع می شود تولد از جهاتی این وز را عوض می کند ولی نه به آن حد که به نظر می رسد کودک با وجودی که اکنون خارج از رحم مادر زندگی می کند هنوز کاملا به مادر وابسته است ولی هر روز از روز پیش مستقل تر می شود او خود راه رفتن، حرف زدن و سیر و سیاحت دنیا را می آموزد. رابطه با مادر تا حدی اهمیت حیاتی خود را از دست می دهد و به جای آن رابطه اش با پدر بیش از پیش اهمیت پیدا می کند برای اینکه تغییر جهت از مادر به سوی پدر را بفهمیم، باید اختلاف اساسی بین کیفیت عشق مادرانه را بررسی کنیم. درباره عشق مادرانه قبلا صحبت کردیم. عشق مادرانه درست به علت طبیعت خود بی قید و شرط است. مادر نوزاد خود را دوست دارد. زیرا که کودک اوست. نه به خاطر اینکه کودک شرط به خصوصی را به جا آورده است یا اینکه توقع معینی را برآورده است البته وقتی از عشق مادرانه و پدرانه صحبت می کنیم منظور پدر و مادر ایدئال است بدان معنی که ماکس وبر به آن اشاره کرده یا به آن معنی که در نمونه اصلی یونگ آمده است وگرنه منظور این نیست که همه پدران و مادران کودکشان را بدین گونه دوست دارند در اینجا به آن اصل مادرانه و پدرانه اشاره می که تنها در اشخاصی که دارای رویه مادرانه یا پدرانه اند وجود دارد اشق بی قید و شرط با یکی از امیغترین آرزوهای بشر ارتباط پیدا می کند. این نه تنها در مورد بچه بلکه درباره هر انسانی صادق است از سوی دیگر محبوب بودن به خاطر شایستگی خود یا به خاطر سزاوار بودن همیشه جای تردید باقی می‌گذارد. شاید کسی که میخواهم دوستم بدارد، از من خوشش نیاید، شاید فلان و بهمان می شود. همیشه این بیم وجود دارد که مبادا عشق زائل شود به علاوه، عشقی که ما سزاوارش هستیم، همیشه این احساس تلخ را به جای می‌گذارد که آدمی را به خاطر خودش دوست ندارند بلکه فقط برای آن دوستش دارند که میتواند آنها را راضی کند یعنی در تحلیل نهایی به هیچ وجه آدم را دوست ندارند بلکه از او استفاده میکنند. کنند بی جهت نیست که همه ما از کوچک و بزرگ دست به دامان عشق مادرانه می شویم اکثر کودکان خوشبختی این را دارند که از عشق مادرانه برخوردار شوند درباره میزان آن بعدا صحبت خواهیم کرد اما برآوردن این تمنا برای بزرگسالان به مراتب دشوارتر است این عشق در آنان اگر به نیکوترین وجه تکامل یابد به عنوان جزئی از عشق جنسی طبیعی باقی میماند که غالبا به صور دینی و بیش از آن نیز به صورت عشقهای های نوروتیک تجلی می کنند رابطه با پدر کاملا از نوعی دیگر است مادر وطن ماست طبیعت است خاک و اقیانوس است در پدر از این وطن طبیعی چیزی یافت نمی شود. در سالهای اول زندگی ارتباط او با کودک بسیار محدود است و اهمیتش برای کودک در این سالها با اهمیت مادر قابل مقایسه نیست درست است که پدر نماینده دنیای طبیعی نیست اما در عوض بیان کننده قطب دیگری از وجود بشر است یعنی دنیای فکر و ساخته های بشر نظم و قانون، انزبات، مسافرت و ماجرا پدر کسی است که کودک را تعلیم می دهد و راه ورود به دنیا را به او نشان می مطلب دیگری که با این وظیفه پیوند و بستگی دارد رشد اجتماعی اقتصادی است با به وجود آمدن مالکیت خصوصی و زمانی که به ارث رسیدن مالکیت خصوصی به یکی از پسران ممکن گردید پدر در صدد بر تا در میان پسرانش آنکرا شایسته سپردن اموال به دست اوست برگزیند طبعا از نظر پدر این پسر همانی بود که بهترین جانشین او به حساب می آمد یعنی پسری که بیش از همه به او شباهت و در نتیجه بیش از همه دوستش داشت اشق پدرانه بی قید و شرط نیست اساس آن این است که من تو را دوست دارم برای آنکه انتظارات مرا بر برای اینکه که را انجام می دهی، برای اینکه مثل خودم هستی ما در عشق مشروط پدرانه نیز مانند عشق بی قید و شرط مادرانه با یک جنبه منفی و یک جنبه مثبت برخورد می کنیم. جنبه منفی آن در این واقعیت است که برای عشق پدر باید شایسته بود. یعنی اینکه اگر فرزند مطابق انتظارات پدر رفتار نکند اشق زایل می شود. در طبیعت عشق پدرانه این حقیقت نهفته است که اطاعت فضیلتی مهم و نافرمانی گناهی بزرگ محسوب می شود که کیفرش باز گرفتن عشق پدرانه است جنبه مثبت آن نیز به همین میزان حائز اهمیت است از آنجا که عشق او مشروط است پس من می توانم با کوشش خود آن را به دست بیاورم می توانم برای دست یافتن به آن زحمت بکشم عشق او به خلاف عشق مادرم در حیطه اختیار من است روش پدر و مادر نسبت به کودک با نیازهای خود او تطابق دارد کودک هم از نظر وضع بدنی خود و هم از نظر روانی نیاز به عشق و توجه بی قید و شرط مادر دارد بچه بعد از شش سالگی، رفته رفته به عشق اختیاری و راهنمایی پدر نیاز پیدا می کند. وظیفه مادر این است که امنیت او را در زندگی تأمین کند و وظیفه پدر این است که او را تعلیم دهد و چنان راه کند که بتواند با مشکلات جامعه معینی که در آن متولد شده است روبرو شود. نوع ایدئال عشق مادرانه هرگز مانع رشد کودک نمی شود و او را به ناتوانی و عجز تشویق نمی کند. مادر باید به زندگی ایمان داشته باشد تا بتواند از نگرانیهای نابجا و مبالغ آمیز به دور بماند و کودک خود را نیز از این راه مسموم نسازد. بخشی از زندگی او باید صرف این آرزو شود که کودکش استقلال پیدا کند. و سرانجام از او جدا شود. عشق پدرانه باید با اصول و انتظاراتی هدایت شود و باید به جای تهدید و تحکم با صبر و مدارا همراه باشد. عشق پدرانه باید در کودک در حال رشد احساس قابلیت و شایستگی را به طور مداوم پرورش دهد و سرانجام بدو امکان دهد که حکم روای خود شود و از پدر جدا گردد. سرانجام شخص بالغ به مرحله‌ای می رسد که پدر و مادر خیش می گویی او خود یک وجدان مادرانه و پدرانه دارد وجدان مادرانه می گوید هیچ رفتار زشت و هیچ جنایتی وجود ندارد که تو را از عشق من از آرزوی من برای زندگی و سعادت تو محروم سازد وجدان پدرانه می گوید تو اشتباه کردی تو مجبوری عواقب اشتباهات خود را بپذیری و مهمتر از همه اگر بخواهی دوستت داشته باشم باید رفتار خود را عوض کنی انسان بالغ از وجود پدر و مادر خارجی آزاد شده و جانشین آنان را در درون خود با سازی کرده است لیکن برخلاف نظر فروید در مورد فراخود او آنان را با یکی کردن مادر و پدر بلکه با تشکیل وجدانی مادرانه که بر توانایی مهرورزیدن خود او استوار است و وجدانی پدرانه که بر استدلال و داوری مبتنی است در درون خود بازسازی کرده است به علاوه با وجودی که وجدان پدرانه و مادرانه ضد هم به نظر می رسند انسان بالغ به هر دوی آنها مهر می ورزد. اگر فقط وجدان پدرانه اش را حفظ می کرد، آدمی خشن و غیر انسانی می شود. اگر فقط وجدان مادرانه را نگه می داشت، امکان داشت قوه داوریش را از دست بدهد و مانع رشد و تکامل خود و دیگران شود. اساس سلامت روانی و حصول به بلوغ در همین رشد و تکامل از دلبستگی مادرمداری به دلبستگی پدرمداری و ترکیب نهایی آنهاست، علت اساسی پیدایش نوروسیس شکست در روند این تکامل است. گرچه بحث در این مورد به طور مشروحتر از حوصل این کتاب خارج است. اما برای روشن شدن مطلب فوق مختصران به چند موضوع اشاره می کنیم. یکی از علل پیدایش نوروسیس ممکن است این باشد که مادر پسر زیاده از حد با گذشت یا زیاد از حد مستبد است. یا پدر آدمی است ضعیف و بیعلاقه در چنین حالتی پسر ممکن است در مرحله رابطه وابستگی ابتدایی با مادر توقف کند و به آدمی متکی به مادر تبدیل شود آدمی که احساس ناتوانی می کند و تلاشهایش خصوصیات فرد دریافت کننده را دارد خصوصیاتی مانند گرفتن مورد حمایت واقع شدن و نیاز به دلسوزی چون این کسی فاقد خصوصیات پدرانه مانند نظم، استقلال، قدرت اداره زندگی به تنهایی و غیره است. این فرد در دیگران، گاه در زنان و گاه در میان مردان، اگر در موضع قدرت و اقتدار باشد، وجود مادر را جستجو می کند. از سوی دیگر، اگر مادر سرد، بی و آمر باشد، پسر ممکن است نیاز به حمایت مادرانه را یا به سوی پدر یا به سوی کسی که بعداً جانشین شخصیت پدر میشود معطوف کند که در این صورت نتیجه نهایی ماننده حالت قبلی است یا اینکه به آدمی یک جانبه‌ی پدرنگر که به طور کامل تابع نظم و قانون و قدرت است تبدیل می گردد آدمی که فاقد استعداد دریافت و توقع عشق بی‌قید و شرط است اگر پدر آدمی آدمیست خودکامه که در عین حال دلبستگی نیرومندی نیز به پسرش دارد، این حالت در پسر تشدید می شود. وچه مشخصه کلیه حالتهای نوروتیک این واقعیت است که یک اصل پدرانه یا مادرانه پرورش کامل نمی ظهور پدیده های نوروتیک شدید نیز به همین دلیل است، و یا اینکه در نقش پدر و مادر بیرونی و در نقش پدر و مادری که در درون فرد به وجود می آید، آشفتگی حاصل شده است بررسی های بیشتر نشان می دهد که انواع معینی از نوروسیس مانند نوروسیس وصفاس فکری بیشتر بر اساس وابستگی یک جانبه به پدر پیدا می شود در حالی که انواع دیگر نوروسیس مانند هیستری الکلیسم عدم توانایی از ابراز وجود و رویارویی واقع بینانه با زندگی و افسردگی نتیجه بستگی به مادر است.